بسم الله الرحمن الرحیم اسم از زمانی والمکانی اسما مسناح است به دلیل اضافه نونش حس کرده است یعنی دو اسم زمان و مکان مل ملح المدینه فخم مجرى نهری بیقون ملعب الكرة فسیح مصنع الزجاجي مغلق منظر ریفی بديع مدخل الدار بهيج اینا همشون بر وزن مفعل بودند اما امثله گروه با مصرو محبط السياحي مصرو محبط, السياح مصر محبط السياح مصر مصر اسم تنیست مکان نیست اسم خاص محبت اسم مکان هست یا زمان الارض معدن و مورد الماء مزدحمون موقف السيارات بعیدون پس اینا برازن مفعیل بودند اما امثله گروه جیم المسلقریبون المنتزهون جمیلون چرا سه نوع از امثله رو آورده بود؟ در قواعد کاملا بیان میشه به خاطر که سلاسی ها یا بر وزن مفعلند یا بر وزن مفعل یا بر وزن مفعل یا بر وزن مفعل سلاسی ها یا بر وزن مفعلند یا بر وزن مفعل و مزید ها اونایی که بیشتر از سه دارند بر وزن اسم مفعول هستند تو جاره مثلا منتظه متنزه <مجده> تنزه هم بسید متنظه هم چیزی؟ متنظه هم المتنظه هم تنظه های اسم مکان هم هست اسم مفعول هم هست مصدر مینی هم هست بله 4 چیز هست زمان مکان مصدر میمی و اسم مفعول اینا رو باید با به قرینه در جمله تشخیص بدیم. کلا می‌فهمید؟ المتنزه جميلون المصلى قریبون هم, هم بله مصدر هم مصدر میمی هست هم اسم مکان و زمان هست هم اسم مفعوله همشون یکیه تون ما قبلا هم خوندیم اینا, رو. اینا رو خوندیم در اسم فاعل و مفعول در مصدر میمی. نه قنديم میاد نمیاد صفر داد کتاب ما هفت صد اسم الزمان و المكان اسمانی مسوغانی من المصدر اسم زمان و مکان دو اسمی هستند که از مصدر درست میشن به دلالت الی الزمان الفعل او مکانه دلالت بر زمان فعل یا مکان فعل میکنند سدو و یساغانی من الثلاثی على وزن مفعال الثلاثی بر وزن مفعال درست میشوند چه زمان؟ اذا تانن فعل ناقصا زمانی که فعل ناقص باشه زمانی که فعل چی باشه؟ ناقص باشه مانند ملها مانند چی؟ ملها، مجراء ملها و مجراء فعل ناقص بر وزن مفعال هر دوتا او کان المضارع مفتوح العين او مضمومها يا زمانی که مزارع فل الالف فعلش فتحه زمه داشته باشه مانند يلعب يلعب یال عبو یال ابو چی داره الالف فعل طول فتحه داره پس اسم زمان و مکانش در وزن مفعل هست فتحه طول ما علامت مضارع رو برمی داریم یک میم مبسوط می آوریم اگر عین الفعل فتحه داشت سر جاش باقی میگذاریم اگر زمه داشت تبدیل به فتحش میکنیم. اگر کسر داشت سر جاشت میگذاری میشه مز ریبه بر وزن مفعل پون کسر داره ولی اونای که این الفلاشون زمه یا فتح داره بر وزن مفعل اسم زمان و مکانشون که همین چیزو داره میگه اوکان المبارع و مفتوح العینی و مضمومه ها و على وزنی پس بر وزن مف عل میشه زمانی که ناقص بود یا زمانی که مزاره این الفلش فتحه ازمه داشت در این دو حالت و علا وزن و اسم زمان و مکان بر وزن مفعل می باشن اذا کان الفعل و صحیح زمانی که فعل صحیح الاخر باشه مقصور العینی في مباره و مزارهش این الفل کسره داشته باشه مانند دیگه از ریبو اسم زمان و مکن شویه چرا؟ چونه؟ این اون همون را داره کسره داره ماننده ده پس ملعب فتح داشت مصنع اونا فتح دارن تون بر وزنی یا لعابو هست یا صنعو هست یا نظرو یا دخولو منظرو مدخل اونا بر وزنی مفعل بودن اما یحبتو اسم زرف زمان میشه محبت تون یحبتو بیتی داره کسره داره یا دینو معدن یا همچنین مثال ورده یاری دو میشه مورد مفئل پس میگه اسم زمان و مکان براز مفئل هست زمانی که فلسهیه الاخر باشه مکسور العینی فلسهیه الاخر و این الفلش در مزاره کسر داشته باشه این یک حالت اوکانه مثالا سهیل الاخر یا زمانی که فلسهیه الاخر باشه مانه ورده زمانی که فعل مثال باشه و صحیح و آخر باشه البته یعنی مثال خالی باشه مثال چه باشه؟ در این حالت هم بر وزن مفئل می معنی مورد و موقف و قفایت و مثال هست اسم زمان و مکان کشه موقف اما در غیر و ویساقانی من غیر السلاسی سد و على وزن اسم المفعول در غیر سلاسی بر وزن اسم مفعول درست می شوند معنید اگر شما بخواهید اسم زمان و مکان از یستخدم رو درست کنید میشه مستخدم اسم مفعولش همون اسم مفعولش که علامت مزاره رو بر می داشتیم یک میمه مضموم می آوردیم ما قبل آخر رو فتح می دادیم در اسم مفعول ماصدر میمی هم چنین بود. تنوین اگر نداشت رو چیکار؟ دیگه پس این بود اسم زمان و مکان اما در سه